خب باب زكاة الفطر باب زكاة الفطر وزكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم وجدها عند غروب الشمس من ليلة الفطر فعضلة عن قوته وقوت من يلزمه نفقته في يومه وليلته زكاة الفطر واجب برحر شخص أعزاء بسلمانيكي بيابد أنرى تن غروب خورشید از شب فطر عシャوه میگن خورشید که غروب کرد زکات فطر بر شخص واجب میشه اهناف میگن نه از فجر صادق روز عید میشه زکات برش خب این اختلاف تاثیر هم داره چون اگر کسی بعد از واجب شدن زکات به دنیا اومد دیگه برش زکات فطر نیست مثلا یکی اگر یکی اشا به دنیا اومد طبق نظر شوافه دیگه این زکات فطر برش نیست طول بعد از وقتی به دنیا اومده که زکاتش شده زکات فطر واجب شد و طبق نظر احناف این چه داره بله خب بریم جلوتر میگه زکات فطر واجب بر هر مسلمان آزاده که یافت آن رو هنگام غروب خورشید از شب عید فطر فازلتا ان قوته و قوت من یلزمه نفقته فی یومه و که اضافه بود بر غذای خودش و غذای اونهایی که نفقشون بر اون شخص لازمی هستن اضافه بود از اون غذایشون و شبان روسش همین نظریه تقریبا قبیت هر می‌نماید از نظریه اهل فرشون مرا برای زکات فطر هم نسب قایلند. اهل ف برای زکات فطرم چه قایلند؟ باحال. اما قول ارجح من قول جمهوری. یعنی شوافیو، مالکیو، احمدو دیگر فقهاء میگن نه انجام دیدگی ازی به نسب نیست. و یخرجها عن نفسه و زکاة و شخص از خودش یعنی بجای خودش و عمن یلزمه نفقته من المسلمین بنسب من والد و ولد و بسبب من زوجت و عبد زکاة فطر و شخص برای خودش و برای اون اشخاصی زکاة فطر مید که نفقشون برگردنش هست مسلمان هستن حالا چی از راه نسب؟ مانند پدر و فرزند فرزندش بود اون نفقه شو میده پدرش هم بود چی میگم؟ زکاتش میده؟ پدرش بود میده چی از راه سببی؟ مانند زنش یا بردهش. فیو ادی ان کل من جماعتی هم ادا میکنه از هر یکی از اینها یک سارو و قدره خمسطو ارتالن و سلسون بالعراقی اندازه سا هم میگه پنج رتل و سلس رتل عراقیست عراقی بغدادی خوب این اندازهش که این در زیر پاورغی به دستش آورده میگه برابر با دو کیلو تقریبا دویست دویست پنجاه گرم. بعضی تا کیلو تا بیشتر هم به دست شاوردند چون لا فرق میکنه نه احناف بعضی کتبشون کیلو، بعضی بیشتر هم چون اونجا روی خود سا در خود مذهب اختلاف هست سای امام آبینفر رحمت الله علیه که در عراق بود بعدا شاگرداش رفتن مدینه باست کاریم این بحث ها نداریم موافصلن در هر صورت یک سا میده من غالب الاقوات المزکات من الحبوب و ثمار از غالب هایی که زکاتی هستن از حبوب و ثمار خب پس از اینا میاد زکات فطر رو خارج میکنه احنا البته در مورد این زیر دستانی که نفقشون بر شخصه تفصیلاتی هم دارد مثلا اگر خودشون بودند خودشون زکات فطرشونو میدند یا در مورد خب بریم جلوتر ولا لا یخرجوها خبزن ولا دقیقن میگه زکات رو خبز و دقیق نمیده نون و آرد ولا لا قيمتها ورقا ولا ذهبا و قیمت هم نمیده و قیمت هم نمیده اینجا دیگه احناف میگن قیمت تنها احناف البته و چیزی که من حقیقتا به اون نتیجه رسیدم اینه که من از دید من جایزه قیمت چون قیمت هم تا آمه پول هم تا آمه انسان بیاد مجموع روایت رو نگاه بکنه و خیلی از شوافه هم البته این نظر رو دارن مثلا در کتاب منهجی اینو داد و شافیای های جنوب هم این فتوار رو دادن در هر صورت خب و من وجد بعضها اخرج ما یجد منها ان نفسی ثم ان امسهم سببا میگه اگر کسی بعضی از اونو یافت یعنی مثلا زکاة فطری که میخواست خارجش بکنه کامل نبود برای تمام افراده مثلا زیر دستاش اونایی که نفقه نفقشون برشه مال خودشو اخراج میکنه سپس اون سببی هایی رو که محتاجتر و نزدیکتراند ولو کانه فی من یمونو کافرون لم يزكيا میگه اگر اونایی که نفقش بر شخص هستن در میارشون شخص کافری بود خدای نکرده فرزند کافری داشت آ خلاصه لم یزکيا دیگه برای او زکات فطر نمیده ولو کان عبد بین الرجلین اخرج عنه صاعا بینهما اگر یک بردهی مال دو شخص بود بردهی شریکی مال دو شخص بود میگه هر دو تا سار و زکات فطرش رو بین هم دیگه هر دوتا تا پرداختش میکنند ولا یزکی ان موکاته و لا المکاتب نفسه یا موکاتب میگه زکاتشو نمیده شخص چون الان داره خودشو خودش نمیده میخره ازش نه میگه زکات مکاتبه نمیده همچنین خود مکاتب هم برای خودش زکات فطر میگه نمیده و یوزکی امن ابق من ابیدهی او غصبه او روحینا و من بهی زمانتون و زکات فطر میده از اون بردهی که فرار کرده ابقه فرار کرده رفته یا غصب شده یا رهن اونو جایی گذاشته و همچنین زکات فطر میده از شخصی که به زمانتون زمینگیر هست افتاده هست دیگه نمیتونه کسبی بکنه و یختارو ان یخرجه قبل صلاة العید من یوم الفطر وقت مختار یا وقت اختیار اینه که قبل از نماز عید روز فطر صدقه فطر رو پرداخت بکنه این بعد الصلاة من اگر پرداخت کرد ذکات فطر رو بعد از نماز ولی همون روز میگه کافیش میشه در حدیث شمده اگر تا نماز اونو داد داد اگر نه بعد از اون دیگه مثل بخیه صدقه ها حصال میشه و این آخره انهو کاند قضاان اگر به تاخیرش گذاشت دیگه بعد یعنی به این معنی نیست که پس از گردنش ساقط میشه بلکه باید قضاشو بده باید قضاشو میگه چیکار بکنه بله میگه ایمه اصلا همشون اتفاق بر این چیزی دارند که زکات فطر با تخیر ساقط نمیشه بلکه یک دینی بر گردنش هست تا زمانی که اونو چیکار بکنه حالا چه صدقه هست چه غیر صدقه کاری نداریم ولی این باید پرداخت بشه إن يديني هس كبرقردنش هاست وإن أجلها قبل يوم الفطر في شهر رمضان أجزأه ميقا أجر زودتر شداد قبل روز فطر در ماه رمضان، برش كافية یعنی مثلا 27م 28م 25م خلاص قبل از روز فطرش داد میگه کافیه براش و این اجل ها قبل شهر رمضان لم یوجزه ولی اگر قبل از خود رمضانش داد دیگه کفایت نمیکنه دیگه درست نیست دیگه جایز نیست این شد از باب صدقه فطر